مجموعه دیدنی ها و راز بقا یکی از به ماندنی برنامه صدا و سیما بود با اجرای زیبای استاد جلال مقامی، دوبلار تام داستین هافمن، رابرت ریدفورد و مایکل کین تجربه دیدنی هاست نوستالژی خون آدمو همچین شوهایی بالا می ببره نام خدا با سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده و آرزوی پیروزی نهایی دلاوران مسلمانمون در جبه های نبرد نور علیه ظلمت دومین برنامه دیدنی ها ویژه نوروز رو تقدیم حضورتون میکنه افشا از انتهای بروار حیرم یه بلندی است که یکی از این پاهداش من حقیش توش می میکنم گفتگو با جلال مقامی مرد یک شمب شب های تلفیزیون دیدنی ها سی و دو سال است که نخوابید جلال مقابید با دیدنی تون روزگاری که دوتا شبکه بیشتر نداشتیم برنامهاشم حالا همچین تعریفی نداشتن تون سالهای پر استراب آژیر قرمز و توپ و تانک و بمبارون و هوایی و موشک تون سالها حواستمونو پردیم <تصفح> شما چند سال میتونه؟ من متولد بیستم و شست و اف سال هم میشیم داریم دو تا نوه دارم دیگره هم چه سبز شیطون دختری به خصوص می درد ماند می دوا می خس ماند می جوا می نای ماند می نوا می چنگ زیر و بمزنم برای آدمی مثل من خیلی زود گذشت نمیدونم یا به نظرم اینطور نیا که ظرف مثلا دوده یکی ده ده سال پیش خب با الان هم خیلی فرق میکرده هیچ مهم نمیست چه وسا این سفیدی موهای سر من مثل شکوفه درختانی که در این فصل الان همه سفید هست چه ما اکنون سفر انداختیم بمزه ابروکمانان میاد باد تو برم قدر بود چشم ما باشیم خدا و امناتون قدر آفست درود بر تمام هنجره های و صداهای ماندگار به نام خداوند جان و خیرت سلام ارز میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی از آغاز دوبله فیلم ها به زبان شیرین فارسی بیش از شهست سال میگذره در تقیه این سال ها علاقمندان بسیاری به جمع گویندگان فیلم پیوستند و بعضی از این عزیزان در انجام کارشون بسیار موفق بودن و در جایگاه خاصی قرار گرفتن یکی از این عزیزان میهمان ماست که جایگاه واقعا خاصی داره و در این زمینه بسیار خوب در آقای جورج پتروسی سلام سلام از میکنم سلام ممنون شما خودتون استاد بنده هستین در این کار واقعا جالبه که با شما صحبت میکنم اینجا برای من این روزا یه ذره هوا با این عوضا خراب و اینا ها میدونی که یه ذره سرما خودم صدام گرفته ببخشید از حالا از خیلی خوبه کنم خودم <تصفح> احساس میکنم کنم که گرفته هنر <تصفح> دوبله <تصفح> ارز میکنم خانه مزفر در تعطیدادات هدل تشریف پرده بودم باقی شمیران امروز صبح زود مراجعت کردم و برای استرات مستقی تشریف تشریید بردم به اتاق خودش به روی والدی ای حاجی خانوم اگه شما آقای اشنایدر اشنایی در نیستین پس اسمتون چیه؟ شما چی هستید طبق داده های ماین است بر اساس پژش های ما یک ماده شیمیایی در پرینیای این وجود داره که حیات سلولی و به طرز چشگیری افزایش میده. نمونهای ما در مطالعات اولیه مصرف شد. ما به مقدار بیشتری نیاز داریم. خوب گوش کنید. نباید به هیچ کس چیزی بگید این دیگه به ما مربوط نمیشه ما فقط باید طبق دستور وزیر آگیوم او پیش بریم باید بیماری ای باشه وگرنه چطور ممکنه ما نفهمیم به چه بیماری مبتلا شدن باید رو پیدا کنیم باید بفهمیم چیه هر آدمی یک واکنش در مقابل دارو از خودش نشون میده. در حال حاضر، آلی بعد از درمان با طب سوزنی برای خونسا کردن سم گوگرد، دارن بهتر میشن. من نمیدونم کی این اطلاعاتو به شما داده، ولی ما پزشکان درباریم و وظیفه ما مراقبت از آلی جنابه مگه اینکه شما به ما اعتماد نداشته باشید. من دیرم شده بود برم بکارم برسم، دیر بره من خوردم میافتم. ریچارد فرستادیش بره به جنگ‌های صلیبی. Yeah, yeah. بودم که بونه بیرون کردن. حالا دوری کردم تو تنفروشم بابا فکر کنم یادت باشه خودت این سر رسید پلیسی رو به من دادی پر از اطلاعات مفیده خاوی نامه مال وقتیه که سرماز بود مدعی عزیز منو میگه اسمم مدلنه نه خواب دارم نه خوراک با این فکر که تنها دلیل زندگیم را در پاریس گذاشتم روزا رو سپری میکنم ولی هم سرم تو رو باز خواهم یافت و دوباره در ایستگاه راهن توپلک عزیزم را خواهم دید پس منتظر من باش خدا حافظ و به امید دیدار خیلی سخته استاد کمال شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه توصیه میکنم به امید وساطت فرنگی ها هم نباشید فرانسوی های هنرپرور شاه رو بیشتر دوست دارن تا کمال المرگ. نظرش شواغه رسیده روی آسفالت نشانی استورمز نیست هیچ ماشینی با اون مورد مطابقت نمی کنه به همین خاطر اگه شما موافق باشید فکرم به روزنامه محلی مشخصات ماشین و اعلام کنم شاید احتمالا خبری به دست بیاره. اطلاعات یاد شده از نظر اصولی با اطلاعاتی که همکسون دستن در کاران هواشناسی از اونها برای پیش بینی هوا استفاده میکنن تفاوتی ندارن ما همکنون اطلاعاتی از سراسر اروپا داریم که به طور همزمان با استفاده از ابزارها و خط مش مشابه در یک روز جمع وری شدیم بین خودمون باشه کالین دوست نداره دکتر بیاد اونو ماینه کنه فلیسیتی کاش تا دکتر کالین بودی کالین خیلی خوشحال میشه تو رو ببینه این اصله متعلق به یه سوار نظامه اینجا رو دستش حروف جی بی کنده شده میدونین چی به فکرم رسید؟ تو فکر بازو بندم تو فکرم که سبز باشه نه سبز سیر پارسال رنگی شماره یک ماشیره نو نوع سبز بود سبز روشن ولی نه سبز شکاری. سنبال قدرت گروز شرفت اونا میخوان من جاسوسی چند رو بکنم این خیانته شما از من میخوان کاری رو انجام ب خلاف قانون جمهوری و خلاف وفاداری دوستیه و اینه که اشکال داره چرا مجمع توی جلسه چنین معمولیتی بهم به نداد چند آدم بدی نیست دو اون خیلی به من محبت دار از وقتی که اومدم اینجا هوا ما داشته چرا اینو از من می‌خوای؟ من معتادم برای خرید مواد ازشون مبلغ خیلی زیادی قرض گرفتم به خاطر همین توی مغازه ها و توی بازار جنس پخش میکردم بیچاروانی هیچ ارتباطی نداره به هیچ عنوان تنها تقصیر اون اینه که قرفش کنار قرفه ما بوده دیده بودن چند تا پلیس مرزی اون طرفان به این ترتیب به قرفه ایوانی نزدیک شدم و اون کوکاینو توی اون کیف گذاشتم من هیچ کس نیست تو هم هیچ کس نیست فقط تو با استعداد تر از من همین اما استعداد چیه؟ وقتی انسانیتی تو کار نباشه. استعداد به آدم داده میشه. درست مثل ثروتی که از بابای آدم بهش برسه. اما انسانیت باید کسب کنه. ارسی نیست. و متاسفم از اینکه نسل بدبخت ما باید وطی مثل تو داشته باشه. من صدا کردم برم یه میامورده واسه پرسیلا درست کنم. قرار بود علی مرغو گرم کنه. نمیدونم چی شده. هیچکی کیجوز منو به غذای داگی دست نمیزنه تا حالا کسی به سنتو عظم مجمن نشده. در واقع تو زیادی به چانسلر نزدیک شدی. و مجمع خوشش نمیاد اون توی امور جدای دخالت کنه آنکه این تعهد ما به سناس نه به رئیس سنا که مدت ها بعد از سپری شدن دورش تو پستش باقی مونده تنها دلیل اینکه مجمع اجازه حضور تو رو داده اینه که چانسلر بهت اعتماد داره مجمع میخواد تو گزارش تمام فعالیت های چانسلر رو بهشون بدی میخوان بدونن چه کارایی میخواد انجام بده حالا که این همه پول دارم و هر کاری انجام میدم تو روزنما مینویسن منم یه فکری به سرم زدی خب فرض کنید شما فضایی بودید و میخواستید خودتونو مختی نگه دارید اگه من از شما عکس داشتم اون وقت شما چیکار میکردین؟ برمیگشتین میگشتین و اونا رو میبردین مگه نه؟ و به محض برگشتن منم... اكس می گیره صدق. نقشه‌ی خوبیه نه؟ مدیران قسمت آلبانی. منم نمیدونم لا بدی همون قسمتی هست. گوشکار میخوام از خواب ناز بیدارشون کنی. سی‌آی‌ای ام‌سی یو‌ها تا هستن اوجی رو بیدار واسه. عزیزم میدونم یه ست دیگه بیدار می میشن. من الان کارشون دارم استراریه. دلیل خواسته من از دوستم آقای ژاکوب برای ملاقات امروز همین بود. من احساسات شما رو درک می کنم. حمله ارتش اسرائیل به خاطر تثبیت موقعیت شما کلمیان در لبنان بود و انتظار داشت که در بغ به ورود با استقبال شما رو بر خواهد داشت. ولی متاسفانه من عکس اونو استنبات کردم. گدان مگه به ما قول نداده بودی که داروهای جدیدتون از سرماخوردگی گرفته تا سرطان معلوجه میکنه. متاسفم گرددان این ماجراجویی باید ختم بشه. ما تصویم گرفتیم در این موسسه پژوهشی رو ببندی با بل دلژیکی ها اولین کسایی بودن که توی آفریقا دست آدم را قطع کردم. پادشاال یو پول از بین هر صد تا برده توی کنگو دست یکو می تا منظم باشن خیلی از این بچه ثیر شوشی ها بودن. ما داریم سعی میکنیم بازسازیشون کنیم, کنیم. بعضی از اونو مجبور به انجام کارای وحشت ناکی شدن. من تقریبا تمام شورشی ها از وقتی بچه بودن میناسمیم. حتی فرمانده این منطقه هنوز میترسه با خطکش بزنناشه <تصفح> آ مدرسه سر ساعت سه بعد از ظهر تکیل میشه. ما خدمات نگهداری بچه نداریم. قبل لا خیر تا چهار روز دیگه پیرس خیال داره بزرگترین حمله طلا رو در این منطقه انجام 9 میلیون دلار. سد ازار دلار سهم تو میشه لومکس حاضری به عرفان گوش بده یا نه نه اصناست نفرم بیسته اشتشون سواره هست من پنشتشون هم تو دلیجان. هر کدوم از اونا مسلح به یه توفنگ اتوماتیک دو دوتا هفتیر و تا, تا گله خوشگلن میخوام هرگومش بکشم بیرون بودن یا نبودن مسئله این هست آیا شایست تران است که زربه های روزگار نامساعد را تحمل کنیم یا سلاح نبرد به دست بگیریم و در مبارزه مرگبار با دریای مساعد آنها را از میان برداریم مردن، خفتن و شاید خواب دیدن آخ، مانع همینجاست همینطور که میبینین وارث اسلکتین پیغام دیگه گذاشته من میترسم که یه وقتی به خودمون بیاییم که ببینیم اون حیولا همه شاگردای ما رو برده تالار تا اسرار باید شاگرده رو بفرسیم خونههاشون متاسفانه به پایان کار هاگواردس رسیدیم میدونم میدونم مرد شدن خیلی سخته تو ال یه سرباز انقلابی هستی و من فرماندهٔ توم میدونی یعنی چی یعنی اگه سیدی یا غذا خواستی بیا پیش من خودم هوا تو دارم تو به در فرماندهی رسیدی دیواندی تو رئیس شدی. <تصفيق> از میان دودکش ها و صخره ها قصد داریم به قاعده مخروطی برسیم که نقطه اتصال بعدی ما خواهد بود پیدایش وسایل جدید بسیاری از مشکلات صعود را حل کرده است یکی از خوشمندترین این وسائل به نام فریان خوانده می شود که با یک طراحی ساده اجازه می که نیویی که به صورت تئوریک باید میخ را از سنگ خارج کند آن را بیشتر به درون سخره محکم کند نمیدونی چی کشیدم تا این لقبو رو کسب کردم بعد از اینکه متوجه شد من تا سرحد مک حاضرم بچنگم جنگم یونفو همراه یک فرستاده از دربار هان به بویا برگشته. فرصته‌ی هان تو بویا منتظره تا شما رو دستگیر کنه و همراه خودش به چنگ آن ببره. دشمن به زودی به ما حمله کنه شک ندارم. هی، بس کن. نمی اون تو حالت شوکه؟ آقای شنایدر، چه کمکی از ما براتون برمیاد؟ شنیدم آلی جناب هنوز به هوش نیومدن و بانوهن در بخش بازجویی ساختمان بازداشت هستن. خواهش میکنم مسئولیت آشپزخانه‌ی دربار رو به بانوی جانشین آلی جناب بسپرید و منو آزاد کنید. بانوی اول دربار من حتی از بیرون اومدن از این اتاقم من کرده من نمیتونم جایی برم خواهش میکنم اجازه عبور برای من صادر کنین تا بتونم برم بیرون من نمیتونم اینجا منتظر بمونم تا بانوه نابود بشه میخوام بیان بیرون و شاهد نابود شدنش باشم نگران حال آقا شدم اومدم ایاده بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم علا حضرت شاهنشاه از این واقعه اظهار تأسف کردن و از سلامتی شما بسیار خورسندن فلیشا چی داری بهمون بگی؟ کاری کردی که نپرد می کردی؟ فلیشا؟ اصلا خودتون نرهد نکنی مسائل برای همه پیش میاد فقط بهتون که دوست پیدا کردن خیلی آسونه ولی نگهداریش خیلی سخته میتونی خیلی راحت بری و حرف دلت تو بهش بزنی اینکه آدم به اشتباهی خودش پی ببره و اونو انسان کنه خیلی قدمی بزرگیه باور کن فعلا توصیه میکنم که بگیری بخوابی فردا یه روز تازه است با یه انگیزه یه تازه و فرصت دوباره این فرصت را از خودت نگیر این پاسپورت گواهینامه رانندگی و بلیط کشتی فردا حرکت میکنه و تا شش روزه دیگه میره سیبر اکروز آقایی که آدم پنج میلیون بشه همهش براش خوبه. الو ببخشید من دیدی دو دل هستم آگهایی شما رو خوندم نوشتید به یک جوان باهوش و فعال و خوشتیپ نیاز من دید من درست همونیم که شما میخوایم در مورد تقسیم ثروتتم به خاطر اینکه ادالت رایت بشه به هیچ لگ از شما یه پاپاسی هم نمیرسه همه این شما رو از علم کردم چه پین خر ما رو داتر ما اینجا رو غارت میکنیم بعد آاتش میتونیم و اینجا میرییم اوبا خیلی تخ بود و بعدش دیگله. شااعت ح رو دیگه باید خیلی صبر کنم باامیدیددی در دی شفردا جواد دهخنشون امدا کن به ساعول خوش آمدید ارباب ما در انتظار شماست بفرمایید به زودی اسمشون رو خواهید فهمید سربرم ببین پدر بهت که گفتم خودم کلی کار در پیش دارم حتی اگه میتونستم بیشتر مرخصی بگیرم برای عروسی میگرفتم رسیدگی به این کارام خودش خیلی شاید باید یه خدمت کار استخدام کنیم امیلیا زفا. پارادای ماتا متا همش چون داشتن این شعر به نابودی میکشیدم من بیشتر عمرمو تو زندون گذروندم تا اون همه کارامم دارم و هیچ وقت کسی رو نکشتم که سزاواره کشته شدن نباشه حالا من واسه تو و دوستات یه پیغام دارم من برای سر هر کسی که در این پرونده باشه هر کی باشه و پنجا هزار دلار جایزه میذارم اینطوری تو میشه که چه مزه‌ای داره یه از تو تاریکی بپره بیرون رو مغزتونو داغون کنه می‌خوام حالیتون بشه اینجوری زندگی کردن چطوریه؟ عرض می‌شود کاری یکی از شاگرد‌های استاد مزاگیر دوله است. ان الله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد. به بمخ زین کیوروکای نازنینم حوسه داشتن یکی از این بیلیت‌های طلایی رو کرد بلافاصله تا جایی که میشد رفتم به خرید شکلات ونکا کردم هزاران هزار تاشو خریدم صد هزار تاشو سه روزی گذشت ولی شانس نیوردیم واقعا که بحشداک بود هر روز که میگذشت کیوروکای عزیزم بیشتر ناراحت میشد خب راستش میدونین چون حاضر نبودم ناراحتی بچه‌م تو این اندازه تحمل کنم قشنگ فردم تا زمانی که آرزوی فرزند دلبندمو برآورده نکردم به کارم ادامه بدم تا اینکه بالاخره موفق به پیدا کردن یک بیلیت طلایی شدم خدا را شکر هنوز عکس از سر تاخچه خانه خودمون بر نداشتن با خودت نمیگی کاش شوهرم با اون معمولیت نمی رفت بچه ها چه میکنن؟ پسرها باید مرد بار وقتی یک زن کتبانو در خانه داری هر چه فقیر باشی تفانگری کتبانوی عاشق بیاز چندانی به رفتن بازار نداره از برکت دستهاش مطبخ همیشه دایره و از حسن سلیقش سفره سفره زیافت <تصفيق> میخوام قول بدین این کارا دیگه تکرار نمیشه امروز شانس رو که ما تونستیم اوزار رو رو کنیم ما ممکن اختراف داشته باشیم برای با کمک من که زندگی حرفه‌ای تو امکان پذیر میشه ممکنه بهش جایزه نوبل ندن ولی هدفش درسته. <تصفيق> <متنج> آروم باشین من یه سیاستمدار نیستم من مدیر برنامه انتخاباتی همه جور آدمایی بودم از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا شهردار نیویورک و برندم شدم و حالا هم اینجا هم چهرم مبارزه شهردارتون کار کنم. نمیدونم چطور مرتکب چنین اشتباه احمقانی ای شدم ممکن بودون بمیره. باید به خانواده‌اش تماس بگیرم توضیح بدم. دای ژن ناپلئون که فرزند ارشد بود پس از مرگ آقا هم امارت او رو به ارس برد، هم خوربخوی او رو و هم لقب آقا دایجان به بحانه حفظ اتحاد مقدس خانواده به قدری در زندگی برادرها و خواهرها دخالت کرد که بیشتر اونها یا دور خانه هاشون دیوار کشیدن یا به زور دادگاه فروختند و رفتند باقیمان خانه ما که ارس مادرم بود نه که پدرم و خانه دایجان سرهنگ که تونسته بود دور حیات خودش نرده آهنی کوتاهی بکشه. جای جناپولون، مثل روح آقای بزرگ در امارت اربابی زندگی می‌کرد. و از های بزرگ این امارت که در واقع حاکم نشین باغ بود، همه جا رو زیر نظر داشت. عکستون سر تاخچه، اسمتون بر در خانه و عشقتون در های ماست تا قیامت. تا من هستم. این سخف ها جرأت زمین ریختن ندارن. سارا ستون سنگی سختی است، 20 زیر این توفال های بارون خورده. هاه، این لباس‌ها و حوله‌ها دفن شده، می‌تونن استفاده کنن. می‌ذارم ایشون تو کلشو. یادتون می‌مونه به دکتر بگین کجاست؟ <تصفيق> فرماندهی من با قدرتم با خود رسمی فرماندهی مخالفتی داری؟ افراد خوبم دارم تمرکز میکنم این از اون تصمیم ماهی نیست که بشه همینطوری گرفت بلی من کس ندارم تو رو تنها رها کنم شین همکار جدید توی اون درست مثل خودمه ولی به هر حال من همکارت بودم ما خیلی وقت بیش با هم هم قطار بودیم روزی روزگاری سه تا زندگی ن اونها لباسهای بزرگ سیاتنشون بود و کلاهای بلند سیاه به سرشون میزاشتند شبها زیر نور معتاب کنار جاده قایم می‌شدن. اولین دوست یه تفنگ داشت دوز دوم یک بادساز داشت که باهاش فلفل میپاشید دزد سوم یک تبر بزرگ قرمز داشت و اونا وقتی سر و کلشون پیدا میشد زنا از ترس قش میکردند و شجاع ترین مردها از ترس جونشون پا به فرار میذاشتن من تمام بعد از ظهر دیروز و با ابو علی و دوستانش بودم مصنوع اصلی شما مطمئنا ابو خلیل و, و دستش هستن محل تقریبی اونارم هم که میدونین کجاست پس چرا کارو تموم نمیکنی کامپیوتر حرکت دور مینا رو دنبال میکنه و ترکیب مینیاتور کمک میکنه صحنه جنگل رو خلق کنیم اینم از این بخش خاطرات تولید ما همچنان ادامه میدیم ساختنشم خیلی برمون جالبه هرسمن تو پوستش نمیگنجید منتظر چی هستی اوصخایی کنم تو واقعا فکر میکنی ما همه بچه‌ای مگه نه اما خود رای و بازیگوشی و با باید هدایت بشید میرم خونه خیلی خسته‌ام با رفقاتم در واشنگتن بگو به بازده پولشون رسیدن بازم چای میخاین بچه‌ها شوهرام پول برده که سر جش بدن خا خب دست چطور تا؟ وقتی اون میس پیتو با دستت بالا گرفتی، پول فکر کرد مال اونه. هرچی رو که لازم داشته باشین بهتون میدم، ولی اگه میخواین اینجوری برنامه‌تون رو تغییر بدین، بهتر اول از پدر و مادرتون سال کنین. اگه دلیلی دارین که نمیخواین با دوست جوانتون برگردین خونه من، کاملا درک میکنم. ولی نمیتونم بدون اطلاع پدر و مادرتون بذارم سوار قطار بشین. میتونم؟ در حقیقت من برای وارسی نیاو بدم. من احضار شدم. از طرف ساکن اتاق شماره 113 پادشاه بیتاج و تخت سلطن نشین گرند هتل خوش قیبتت طولانی شد تا یه بار گفتی که به من بیش از همه علاقمندی اینو به عنوان پوزش مرد به بپذیر که به تو شک داشت بیا جمعیت آماده خوش آمدگویی به توه راستش ناراحت که اون حرفا رو راجع به اون گروه سینمای هرفه ای زدم اون در واقع خیلی با عرضش هم دیگه با مخالفت نمی کنم پرگاس نیار بشکرمه نگاه تو علوان تیزیانه تری پرمانه علزم هلداری پروفسور موخی کارشناس ترین فرد در مورد مخترعین ماشینه پرواز ده و امروز هم در تالار موزه محلی قرار در این رابطه سخنرانی کنه چرا که این پروتستان ها و ملحدان موفق شده بودند به مفهوم بتاج و تخت رسیدن خواهرتان بود و اگر او زنده بماند برای به سلطنت نقشه ها کشیده خاطر شد نتیجه تحقیقات شخصی تا این ساعت نشان می‌دهد که متهم اصلی در این میان باشی است و قبل از انتقال جسارتان در حضور در ملکانه لعلاج به تفتیش بدنی از متأم استیم. تا طلا و جواهرات را جایی در اسافل منقوسش مخفی ساخته بر شود. هیچ کس در اسکاتلند یاردین موضوع گروه مارها را جدی نگرفته و وینفیل داره خطر میکنه که والتر کروک از زندان آزاد کنه و این جاییه که ما تو باید وارد عمل بشیم. ام. والتر کروک تنها عضو شناخته شده ی گروه مارهاست. گرچه تنبل زمینی از موجوسا اکنون منقرض شده است اما او هم مانند سریگ خیشاوانده نزدیکی در بخش جنوبی این سرزمین دارد. خانوادگی جیانها بسادگی قابل تشخیص است. ببجالم ت، سالت، رئیس جمهور میرود، سالت همتون. این چیزا رو که میگم تکرار کن. فاخاگیش نایدر. این یه تمرین برای ت و ه. شما اشتباه میکنید. خواهش میکنم یه دفعه دیگه. رئیس جمهور میرود، سالت همتون. وقتی همه یونیت‌ها میاریم اینجا، چادورا، بارا و تریلررا باید مطمئن بشیم که همه چی آماده است. درست مثل اینکه کریسمس برین یه جایی چادر بزنید. باید مثل خونه راحت باشه. محفظیقان با سایبرنتیک در یک شرکت تجهیزات بزشکی شروع به کار روی پروژه‌ای به نام دروازه مغز کردند. زمن عملیات این حسگر به رابطی متصل به سربست می شود، و حسگر سیگنال های الکترونیکی مغز را گرفته و آنها را به دستگاه منتقل می کند تا تعبیر شوند سیگنال های تأبیر شده سپس به رایانه منتقل می تا با استفاده از فکری نشانگر ماوس حرکت داده شود استاد این چه سماجتیه که اهل هنر دارند در نبوسیدن دست قدرت تکبر نیست حسد هم نیست یک جور جلب نظره خیال میکنین خدا چیزی بیشتر به شما ها داده شما 235 دلار بده کارید این مبلغ در ازای بزر رو آزوقه و قلو و چیزهای دیگه بوده فقط یادایتون باشه هیچ کدوم سعی نکنید اینجا رو ترکنید بخی میدونین این مورد یه مسئله قانونیه و ما میتونیم با کمک کلانتر شما رو دستگیر بر راهی زندان کنیم. به سوی شمال، به سوی جنوب به شما معرفی میکنم الیزابیت ملکه شما. علا حضرت این, این شگفت گفتانگیزترین خبری بود که شنیدم همین طور باید برای این واقعه مبارک از اعلی حضرت تشکر کنیم که واقعا دست کمی از یک معجزه نداره با توجه به تجربه به دست آمده از تاریخ تحقیقات هواشناسی اطلاعات، برنامه‌ها و نظریه‌های علمی عناصری مهمی محسوب می‌شوند اروپا در قرن 19 شاهد سرمایه طاقت فرسایی بود همین امر توجه جوانان دانشوی معروف به گروه را به خود جلب کرد بله میخوام شما مسئولاش بسخانه دربار بشید. اگر برای بانوهن اتفاق بیفته، شما بانوی اول دربار میشید. مصبن نسیر استراتژیست و فرمانده مسلمانان دستور داد تا دا در کنار خرابه های بندری برای ساختن کشتی و قایخ جنگی تأسیس گردد پس شما بازرس کانرس هستید همه اونایی که زندان حالشون خوبه حالت من نمیخواستم با پلیسا درگیر بشم نمیشه گروگانی که کارای بد میکنه رو تنبیهش نکرد بازرس، میخوام یه زندگی طولانی و پرپول پر داشته باشم ما اینه که یه محیط واقعی به وجود بیاریم و جزیره اسکالو مرتوب و اسرارآمیز نشون بدیم همونی که پیتر میخواست و کاملا قابل باور و طبیعی تو واقعاً آدم واووشی است تام جدی میگم هیچ شک و تردیدی وجود نداره تو کار غلانه کردی اومدی پیش من اینریکو ماتای 24 ساعت توی نمیدونم کدوم بیمارستان تحت مراقبتته اما حاضر شده توی دادگاه شهادت بده اونها این جامپو گرفتن فرانک به اتهام امو این کار مشکلات مالی ما رو حل نمی‌کنه فرانک خب گاسفای این چه زندگی یک انتخاب کردی خودت میدونی تو همیشه باهوش و جاه طلب بودی ازت مواظبت کردم بهت درس دادم با سوادت کردم که چی بشه که بیای اینجا قایم بشی و زندگی تو جار به باد بدی اگه شهامت اینو نداری که با مشکلات بجنگی همینجا بمو و بمیر و وقت ببین برای کی اهمیت داره بنا بر افسانه های به این آخرین کلماتی بود که چنگیز خان بر زبان آور. من برای شما یک امپراتوری بزرگ را تسخیر کردم اما زندگی من بسیار کوتاه آن بود که بتوانم تمام دنیا را تصاحب کنم انجام این کار را به تو گذار می کنم ای راهب ادم و تو ای زن موذی خطرناک و آن یکی که از اینجا رفت. خیال می کنید که با یاد کردن سوگند حتی اگر به تمام مقدسات باشد می توانید از ارزش و اعتبار کسی که درستی اش ثابت شده بکاهید و شما در کنار اموزادان باش و با او در کشف این دسیسه همکاری کن و ببینید از کجا ناشی شده. آن راهب دیگر را هم پیدا کنید و به اینجا بیاورید. اگه بخوای برات قسمم می خورم فقط نمیتونم بفهمم که این سارق چطور به این خوبی میتونه هدیه ما در بیاره؟ باید کسی باشه که تمام جزئیات تکنیک منو میدونه. شاید یکی از افراد پلیسه. فقط سراغ کسایی میره که جواهرات قیمتی دارن. رو, رو پشتمم از روزن سخت وارد خونه ها میشه اثری باقی نمیذاره و بعد وسط شب قیبش میزنه تو من مثل بقیه حرفی منه باور نمیکنن من با یک شهادت دروغ تا ابد تو زندون میخوان درست میگم هیچکس باور نمیکنه ولی پلیسا بیخودی افتادند دم من بعد یه نفره دیگه دزد اصلی باشه البته برای اینکه در موقع یکی سرقت ناراحت شده بودم و گریه میکرد اینو نمیفهمی معنیش اینه که دیگه دزدی مثل سابق منو خوشحال نمیکنه بلکه ناراحتم میکنه معنی اینم اینه که من دزد بالفطره نیستم آه خیلی عالیه نه ولی وحشت وحشتنکی اگه دزدی نکنه سرگرمی نداره عمر زندگیم خراب میشه فقط ناراحتی دارم این کجا شالی و مایکل دوبایز همون شوبد بازه 25 سال به خاطر یه دزدی بزرگ همون دزدی الماس ارزش تجاریش 5.5 میلیون دلاره که هرگز پیدا نشد امروز صبح وقتی بیدار شدم فهمیدم تو دو ماه گذشته تو برام کلی ناراحتی ایجاد کردی من از این جور ناراحتی ها نمیاد اگه چیزی میخوای باید بیا من سوالی داری آقای مالفای آقای مالفای. من چیزی دارم که مال شماست شما این رفتن رو روزی که به کوشه دیگون رفتیم توی پاتیل جنیوییسلی انداختین رایی پیدا میکنم تا اونایی که این کارو کردن پیدا کنم من کاریو که باید بکنم با میکنم منظورم تو نبودی نه من نمیخوام شما رو بکشم من از ازشون نفرت دارم از ازشون بیزارم اون وحشتناک من کاملا توانایی رسیدن به کارامو دارم. هری جکسون هم اینجا داره بهم به کمک میکنه. کنه. هری، میشه کتاب آشپزی رو بذاری تو جعبه مخلوط کن؟ خوب شد که از این دنیا رفت. و الا جواب قیصرو فرمونو چی میداد؟ این تا همه روزگاره. یعنی این روزگاره خنده‌ای. نزنین بزننت. والا دست فرمان گجااست انقد ما رو حق والدین نکنه اون بالا ما با یه سر خاک و فاتحه باس میایم که خوب اونم میایم جغ فاتحهشم میشه از همین راه دور پیشکی حمله کرد من آقا من سلطانم سلطان سینگلی خان ناصری حبسم کردن زندانم خودم میام خونه اگر در قبول خودم تردید دارین در قبول هدايام دل نباشین اینها تصور خودم از شما بود انطور که اون شما نقل کرد برای نپسر. همیشه به یاد یار و دیار بودم. حال من حال تشنه دیرباب رسیده است. حال فقط شوق نوشیدن دارم. الحق اجزای صحنه ها همه بجا به اندازه و مناسب بود. شاء الله جشن مجللی خواهد شد.